مہتیے سوہیلی نوندگان صاحب دل بار دیگر با شما تجدید عهد میکنیم به مهر شما سخنوران و هنرمندان و گویندگان گرد هم آمده اند تا بزمی گرم بیارایند و ساعتی در خلوت دل شما شور و شغ بیافرینند میهمان عرجمند این هفته ما آقای دکتر نستالله باستان و شاعران گرانمایی بزم آقایان مرداد اوستا و مصطفى مجده هستند. خنرمندان بزم آقایان اصدالله ملک، فرهنگ شریف، منصور سارمی و محمد اسماعیلی و خواننده ما آقای گلپایگانی خواهند بود. خانم مهین شهرجردی و آقایان مهدی علی محمدی رضایان هم سروده های سرایندگان را بیان خواهند کرد تحییه کننده برنامه هم آقای عبدالحسین فحیم هستند اگر شنواندگان به یاد داشته باشند اعلام کردیم کسانی که مایلند در مسابقهی که جنبه تفنن ادبی داره شرکت بکنند در این هفته دو شاعر معروف که با نام هر دو آشنا هستید یعنی آقای شهراشوب و آقای بهادر یگانه داوطلب شدند که در همین بازم خضورن بدیهگویی کنند البته با کلماتی که الان تعیین خواهیم کرد و تا پایان برنامه دو ربایی بسرایند و بعدا این دو ربایی به سه داور ارجا خواهد شد تا به بهترین ربایی ها جایزه ای تقدیم بکنیم و نتیجه شو هفته آینده ارز خواهیم کرد حالا برای اینکه کار تفنن شعری ما یا تفنن ادبی ما به قولی شروع بشه قبل از اینکه از آقای دکتر باستان خواهش بکنیم صحبت بکنند یا کار بعض بذرو شروع بکنیم چهار کلمه گفته میشه چهار کلمه متجانس و چهار کلمه متنافر و باید دو ربایی در هر دو زمینی بسازند یعنی یک ربایی با کلمات متجانست و یک ربایی با کلمات متنافر و دور از هم از نظر ارتباط معنی حالا آقا شهراشوب شما یک کلمه بفرمایید الان متنافر را عرفت بفرمایید آتش آتش آقای یگانه شما کاسه آتش کاسه خب یک کلمه سرکار بفرماید آقا شهراشوب یخ آتش، یخ، کاسه کاسه با یخ تنافر نداره اتفاقا جای یخ میخ باست. میخ آتش، کاسه، میخ, میخ. یک کلمه دیگه گرز گرز خب این شد برای روبائی متنافر یعنی یک روبائی باید بسازن که این در اون گنجانده بشه و خانه های گروبائی تقریبا نیمه فکایی در میاد اما میخوام بگیم رباعیام جمله جدی داشته باشه حالا باید کلمات متجانس و تقریبا هماهنگ بگیم حالا بفرمایید آیشه رو شو طوفان گرداب گرداب بسیار خوب گرداب طوفان داشتی یک کلمه دیگه بفرمایید موج پس شد طوفان گرداب موج کشتی برای یک رباعی متجانس آتش کاسه میخ گرز برای یک روبایی متنافع تا آخر وقتی که ما برنامه اجرا میکنیم وقت دارید دو روبایی به سرائید و ما در پایان برنامه بدون که نام شاعر رو ببریم فعلا میخوانیم بعد هفته دیگه اعلام میکنیم که روبایی ها از کی بود و برنده کی هست خب آید دکتور باستان این مسابقه بدیه سرائی پسندی دید؟ بله بسیار کاری تازه اید بله تاشنگه بله و... خب حضرت علی در عین اینکه چشپزشک هستید و طبیب چشم ولی در مطایبه و خاطره و عرضم به حضورتون حضور مجلس و محاوره دستید طولا دارید حالا خواهش می‌کنم برای اینکه محفل ما گرم باشه شما یک مطلبی بفرمایید و بریم بر سر شعر شعرا ولی اینا که حسن ذهن جناب علی بود ولی بنده میترسم اصلا اینه که بنده که طبیبم و اینها در بزم شاعران بیام یه وقت مثل معلم موسیقی شدن من نشه منش ما من معلم موسیقی هم شدید؟ بله عرض میشه قبل از این که اصلا تب و تمام بکنم و اروپا برم یه وقت معلم موسیقی شدم بدون اینکه خودم دلم بخواد شاگردم بودید اول یا خود, خود ساخته بودید؟ نخی در... موسیقی اصلا بنده گوش موسیقی ندارم بیدونید. هنوز هنوزم که هنوزه این آهنگار رو درست از هم تشکیس نمیدن صحیح. ولی اون موقع زمان بیشاره ما... شاگرده شما های بله بیشاره شاگرده بله. در تیل و سه سال پیش ما اینجا تپ بخوندیم در ایران مدرسه یه تب در این اینکه که میخوندیم یک کار خارجم پیده میکردیم بنده چون دانشترهای دانش... دارال معلمین رو خونده بودم که صحیح. به اسطلاح جای دانشترهای ف کار معلمی میکردم در مدارست مثلا در مرسه سلطانی معلم بودم که الان بعضی از شایردام استاندارند و سیناتورند و اینا اگه سن خیلی فکر نکنید که بالاست باید چه بودم باید نخیه هم سن اونا بودم تقریبا یه دو سال بالاتر بودم زمنان تپ من میخودم چشمم پیش شازده لسان کار میکردم چون لسان خدا بیا اولین طبیب چشم ایران در این زمن یکی برادر رئیس تعلیمات عالیه بود که موی زیادی داشت چشمش رو بنده عمل کرده بودم کلاسا آخر تب بودم چشمش موی, چشمش زیادی, موی زیادی داشت, زیادی داشت، مجه،, مجه زیادی داشت که او را عمل کرده بودم مجه لجه بوده تو؟ مجه بعضی ها ادبا میگن مجر میگن مجه حالا بنده روی اون عادت میگم مجه مزگان مثلا بله مجه زیادی داشت این چشمش رو عمل کرده بودم و خیلی هم راضی بود و برادرش از من تشکر کرد. که رئیس تعلیمات عالیه بود یه روزی بنده تعلیمات عالیه بودم میام صحبت شد که مدرسه موزیک شش ساعت کار خالیس در هفته چون اونجا حقوق زیاد می‌دادن گفتم قربان اینو هم بفرما بنده برم گفت سلفژ شما سلفژ بلدید دروغی گفتم بله پیش خودم فکر کردم شب یاد می‌گیرم صبح میرم درس میدم گفتم بله اینم کاغذ نی به فوراً حکم نوشتم به مدرسه موزیک مدرسه موزیک جنب دارول فنون بود یه حیات بزرگی بود و اونجا قالبن نظامی بودن رئیزش هم سالار معزز بود که پدر بزرگ این تیمسار مینباشیان سبه بود مینباشیانه این ها اصلا خونشون خون تو خونشون موسیقی هست همه شون واردن عرض می شود شازده که کابوسی بود حکم ببردیم دادیم ایشون هم میرپنج بود خیلی البته ما کوچیک بودیم و میترسیدیم و تعظیمی کردیم و گفتیم قربان این حکم ما که معلمیم گفت شاید که کابوسی ببر آقا سر کلاس الان من هیچ حاضر نگردم بود شب یاد بگیرم برم صبح درس بدم رفتیم سر کلاس شایردام همه نظامی بودن و گفت ایز خبردار آزادی گفتیم و نشستند و بعد خدای چیکار کار بکنیم چه نکنیم گفتم آقایون شما میدونید موسیقی چطور شده درست شده؟ گفتن نه. گفتم بله من گفتم منم نمیدونم گفتم که این موسیقی رو این اصلا بشر برای رفع خستگی برای استراحت فکری درست کرده مثلا این عمله ها و کارگره رو فرد کن اهرام سلاسه مصر رو که می ساختن اینا رو با شلاق مچهور میکردن که این سنگ بزرگ رو ببرن بالا اینا کم کم آواز بخوندن عمله های خودمونم دیدید بندناه اون بالا برای اینکه خسته نشه نمیگه آجور بده اینو با آهنگ و یه نوای مخصوصی میگه یا گردی فروش تو کوچه نمیگه گردور و فالیستان نار میدم با آهنگ میگه گردون رو نمیدونم فلان طور میکنم و یه دوای هر کدوم میخونن برای رفع خستگی. بعد گفتم موسیقی اثر خیلی خوبی داره مثلا شرح حال چیز رو دادم رودکی رو دادم گفتم که امیر نسل سامانی که محلش در بخارا بود اینطوری که میدونیم یک موقع تابسون برای یه علاق رفته بود به مرد به بلخ رفتون به بلخ به حرات رفتید بله حالا حرات برخ جس یادم نیست که کجا یه جا رفته بود بالاخره غیر از بخارا دیداد میدونه توی توت حرات <تصفيق> و اونجا اونطوری که صاحب چهار مقاله عروزی می نویسد انگور خیلی مفصلی داشت و بیبجاد خیلی خوب و خوشش اومد شاه به جای اینکه برگرده تابسون زمستانمون بعد سال دیگرمون سال دیگرمون چند سال که بود این اعیان دولت خسته شدند جرعت هم نمی کردن بگن برگرد رودکی رو, رو دیدن رودکی آمد شیر بوی جوی مولیان آید همی یادیار مهربان آید همی اینو خوند و بندن برای اینکه ساعت بگذره ای گفتم ای بخارا شاد باش و شاد زی تو میمان آید همی شاه سربست و بخارا بوستان بوستون بوستون آید همی شاه ما هست و بخارا آسمان آ... شا... ما آسوی آسمان. آسمان آید همین اینو گفت و به طوری که شاو در تحت تاثیر این موسیقی فورا پرید و یه اسبی که اونجا بود زینم نداشت روبه بخارا حرکت موزه بر پای نکرده بعد دیدم ساعت نوار کردم دیدم خیلی مونده هنوز که وقت تموم بشه گفتم این شعر رو بهش میگن سحل و ممتنه یعنی خیلی قشنگه ولی به این خوبی هم نمیشه کسی دیگه بگه چون اون که امیر معزی اومد بگه گفت رستم از موزندران آقایات همین زین ملک از اسفحان آقایات همین ببینید هیچ ما هم دیگه قابل ما نیست بعد گفتم شعرهایی که سهل ممتنه میگفتن خیلی بودن مثلا یکی از اینا فروخی بود وقت شعر دادم که فروخی آدمی بود و یه رعیتی بود و ندار بود و بعد شدید امیر شاه چغانیان شعر دوست داره پیش امیر اصد وزیرشه و آمد یه شعرهایی درست کرد که با کاروان هله برفتم زیستون زی با هلهی تنید تنی زدل با افتزد جون با هلهی بریشوم ترکیب اون سخن با هله نگارگر نقش اون زبان حالای طول میدادم اینا رام و سنگ مفکر سن اینجوری تول ندین چون مو وقت ما دکتر جمی <تصفيق> این هله این را تو در شمار دیگر هله ها مدون هر تارم برند برآورده از ذمیر هر پورم به جا جد جدا کرده از روان بالاخره این را زبان سرشت و خرد رشت بود دست و ذمیر اندر میون تا حال خزیله ای که خیلیه من بعدش او بهش گفت شا رفته داگاه اگه میتونی شعر برای داگاه گفت چون باور نمی که این بابا شعر به این خوبی گفته باشه. او وقت اون چون پرند نیلگون بر روی پوشد مرزار پرنیان هفت رنگ گ درتر اوت کوشال سبجن در سبزه بینی چون سر برند درسهره الخره رو گفت داگاه شریاب رگکنون چهنا خوررم بابد چند در آن ازخوررو خیره به مارت روزگاه رو. این دید واقعا خیلی خوب شعر گفته رب پیش شاو گفت قربان شاوئری آوردم که تا دقیقی رو در نقاب و تراب کشیده مثل او رو ندیده بودم در محلوم میشه دقیقی خیلی خوب بوده نا. بعد گفتم نا. که دقیقی که اینجا اسم برده آقا دقیقی خیلی مهمه دقیقی اول کسیست که آمد شعر گفت به شاه رو درست کرد و گفتم که فردوسی هم شعرهای دقیقی رو و گفته و وقت نمشته دقیقی به دینجا رسانید دقیقی رسانید اینجا و سخن زمانه برآورد وقت امرشتبون پیش از اینم گفتم که گفته به خواب من اومد که شعرهای منه بیار تو کار گه کنوم من بگویم کالدر کلاس میفرمایید. برای یک ساعت دیگه <تصفيق> یک ساعت فر بوده این کار پول بکشه. اقا کاری نداریم گفتیم که اون هدایت هم آمده یهشب خوابدید دقی زیر گفت شبی خواببد چش من تیره گ و از اود شب جهان تیره گشت ب کوپ مله دیدم آراافتهه بر، محله که بعد برخافتهه الخر که گفت یکی می شیم بکنم بله درقیقز خلاق نظم عجمع سلامینده مت کا. بعد فرداش این تموم شد راه افازی گشتیم رفتیم سروان محمود هروانی دیدیم که بابا بیا و تو به ما سلفژ یاد بده گفت سلفژ کالی چه سنار نیست اینا اینا باید چی بکنیم بالاخره آمدیم با او قرار گشتیم که او سلفژ درس بده بنده فیزیک صوت و رفتم اون چند ساعت فیزیک صوت دادم که نه همونطور بودین در فیزیک صوت هم هست موسیقی بودین بله نه دیگه فیزیک صوت بالا بود اون رو گفتم محمود ایروانی این کار شایردهای خیلی خوبی هم ناشتم که یکیشون همه رو بخوام بگم باید بگم خدا بیامرس خدا بیا همین که قرنه می زد وزیری وزیری وزیر تبوار وزیر تبوار بله اینا شایذهای ما بودن بله, بله خیلی خیلی بود. حالا امیدواریم که دیگه اینجا سلفژ ندید ان شاء الله و آيون همیشه زنده بمونن این <تصفح> <تصفح> اینکه فرمودید خیلی آقای دکتر خیلی جالب صحبت میکنن و خیلی گرم سخن هستن و خیلی لذت بردم آقای دکتر هر وقت در خدمتتون بودیم که الان بار دوام میشه اینکه فرمودید که گفتم سلفژ تو فرد یه کاریش میکنم یاد یه لطیفه بنده افتادم کی کیفیج استفاده میشه بهش گفتن که آقا شما بلدی که دفتر بنویسی گفت نه پوز جو آورد گفتم بلدی در کارپردازی ارزیابی کنید جنس بخری گفتن نه استعلام باها هیچ حد چی گفتن برات نبود گفتن آقا این کاری که ما می‌خوام با یه جوری براتون استفاده می‌کنیم شما رو به یک شرط کو به چه شرط کو به شرط اینکه فرانسه و انگلیسی خوب بلد باشی خب ای آقا میخواست این زودتر بگیرم تا فردوسو من یه کارش میکنم حالا اینجام برده سلفنی اشبه درس بگیرن و بعد درس بدن خب داستان بود همینطور که فرمودنده در آمد خب آقای بهادر یگانه انگوش بلند کردن و شعرشون آماده البته آقای یگانه دو سه دقیقه که از سخن آقای دکتر باستان گذشته بود آمادگی خودشون رو برای اتمام شعر اعلام کردن البته با اشاره ولی بنده برای این که صحبت آقای دکتر باستان رو قطع نکنم نخواستم ازش شعر رو بگیرم و حالا مرحمت کردم تا ببینیم آقای شهراشوب که شعرشون آماده میشه خب آقای عوستا سرکار حیف است که این همه سخن شیرین آقای دکتر شنیدید و شیرینی پس ندید به هر حال دو بیتی پیوسته ایست به نام فریاد پشیمانی فریاد پشیمانی در پای دل این امید چون خار بر دوش من این شکست چون کوه فریاد از این امید فریاد اندوه از این شکست اندوه بی پرده به دوستان چه گویم دردی دارم که گفتنی نیست این آتش از شما چه پنهان هرگز هرگز نهفتنی نیست در سینه نشسته سرد و خاموش فریاد ندامتی قمنگیز قمناک تر از هزار اندوه پاییست تر از هزار پاییست این آتش خشم شعل افکن نقصان نپذیرد و نمیرد وای من اگر نهفته مانند وای تو اگر که در تو گیرد آن قصه چه بود هان که دیشب گفتی به همه زمن نهفتی تا یاد چه آمدد که ناگه رفتی که بگوی و نگفتی نگفت. در آب و گل تو مهربانی هرگز تو با این گناه هرگز با همچومنی خدا نکرده تو مهر کنی تو آه هرگز یک عمر چو نشستی در چشم منو بخیش دیدی زین آینه تا نگاه کردی زیبایی و جلوه بیش دیدی در پرده این افق چو خورشید بنشه از تراوت جوانی تو بیخبر و قروب می کرد اون فر و شکوه آسمانی اشکگی است روان زدیده چون سیر رنجست گران به دوش چون کوه زان عمر که با تو رفت افسوس زیندرد که بی و ماند اندوه آوری. آوری. آوری. خانم شهرجردی حالا؟ توو میگید شعر شما رو خواهند خون البته با یک ساز خواهش می کنم آقای ملک لطف کنن شروع کنن زبیداد آن ماه پیکر گذشت. مرا هرچه از دور اختر گذشت ز شب تا سهر کاروان خیال مرا همچو خواب از برابر گذشت سر باد گرانی گرفت چو شد دور من دور ساغر گذشت چه گفتم جوانی به بگفتا دریق چه گفتم جوانی به بگفتا دریق چه گفتم وفا گفت دیگر گذشت سیار بشید مرا یاد روی تو در و آه گه از آب و گاهی از آذر گذشت به جانم نبخشیدی و روزگار نخواهد زبی دادتو تو درگذشت فراموش کردی تو رفت همه هرچه گفتی تو یک سر گذشت <تسحن> که گفتی مشو دور از نزد من که گفتی مرا باش در بر گذرشت که سوگند خوردی به مهر و وفا که از تو مرا بود باور گذشت که تن می‌زدی و دلت می‌تپی در آغوش من چون کبوتر گذشت که مرغ نگاه تو پر می‌گشود مرا از بره دیده تر گذشت فراموشم از دل نخواهی شدن ز تو گر گذشت و ز من گر گذشت تو ای خواب گشتی هما قوش او یکی از منو را بگو سر گذشت شبت سایهی دور از این پهن داشت جوانیست آن سایه بنگر گذشت نبودی کنین روزگارم تباه اگر داشتی ای فسونگر گذشت چه گویم از این موچخیز بلا که دیگر مرا آب از سر گذشت شعر بسیار خوب آقای آقا. آقا. آقا شهر دارد به بعد دست داخل معلوم نیست که یه خود با آقای اوستا بزنیم یه خود شهرجردی بزنیم یه آقای ملک. ستبار. آقای شهرجردی و خانم شهرجردی. خانم شهرجردی. <تصفيق> بل. بله ما برای هر سه دست می‌ذاریم البته. هر سه سهم دارند و بله بیان کننده و نوازنده و به خصوص شاعر. خب خیلی متشکریم حالا میمونه سومین قطعه شعر آقای اوستا. که باید زحمتش رو آقای رضایان بکشد زحمت که چرز کنم باید باید یعنی ولی افتخاریه عالی همکاری کنه چه خوبه شما را خب آقای صارمی دارید شب دارم دلکی پرخون شبکی مست از می نابم کن به یکی اشبه به یکی افسون مه من مستم کن و خوابم کن همه سوزم کن همه دردم کن همه دودم کن همه جردم کن همه خورم کن همه وردم کن همه عشقم کن همه آبم کن تو اگر مهری تو اگر ماهی تو اگر عشقی تو اگر آهی همه دلبندی عمدلخاوی به اطابم جیرو جوابم کن بسیار بسیار آلیست گلکت خندان گلکت خندان لبکت زیبا سخنت شیرین دلکت شیدار من اگر فرزان اگر رسوا تو همان دیوانه خطابم کن آفایی من اگه بودم فوری میمدن والا گلکت خندان لبکت زیبا سخنت شیرین دلکت شیده من اگر فرزانه اگر رسوا تو همان دیوانه خطابم کن نه تو شمع محفل من بودی نزه هستی حاصل من بودی نه تو پیوند دل من بودی به فسونی مستم و به فسونی مست و خرابم کن با من با من چشم سیحت نازم روخ تا بنده چومهت نازم گل من گل من سهر نگهت نازم به نگاهی باده نابم کن من اگر دیوان اگر مستم من اگر دیوان اگر مستم به کمند عشق تو پا بستم به یکی عشبه ببر از دستم به یکی افسانه به خوابم کن لبکت بوسم دهنت نازم شکرت نوشم سخنت نازم سر زلف پرشکنت نازم سر زلف پرشکنت نازم همه چینم کن همه تابم کن تو اسی رو بدرم کردی تو اسی رو دربدرم کردی تو به رسوایی سمرم کردی به فسونی بی خبرم کردی به فریبی موج سرابم کن آفرید آفرید آفرید چیز زیادی هم نخواستی از باباها آقای ریزه هاییان میخواد که قشن بخونه بیاره دشتی نسید نسید من فراموش کردم ارز بکنم که قبل از اینکه که خانم شهر جردی شیر آقای عویستا رو شروع بکنند آقای شهراشوب هم روبایی هایی ها که ساخته بودن به من معمد کردن در پایین برنامه هر دو رو یعنی هر چهار روبایی رو ارز خواهم کرد خب حالا با باجای دوستان می‌خوایم که آوازی بشنویم. آی گلپایگانی‌ها هم حاضرند و در کنار بندنش هستند و با درخت چون طوزی در برای آوازشون بدن. من چند بهت از غذری رو در دستگاه شور می‌خونم. هنرمندانی که با من همکاری میکنن آقایان عبدالله ملک، فرهنگ شریف، منصور سارمی و محمد اسماعیلی است. دوستان همیشه مهسن دیگه شین. بله. تمنا می‌کنیم که آی گلپایگانی شروع بفرمایید. خوش گیسو، تا چه بیتابم کنی آمدی با تاب گیسو تا چه بیتابم کنی زولف بر یک سو تا غرق محتابم کنی آتش از برق نگاهت ریختی بر جان من خواستی تا در میان ها آبم کنی رفتی از پیشم که دور از چشم خود تانیم شب رفتی از پیشم که دور از چشم خود تانیم شب با نوای لای لای گریه ها خوابم کنی بر یک سو زدی تا شاد برق نگاه ادریختی فرجان من خاصی تا در میانه خاصی تا در میانه قل له او بم می خواهد تا نیم شن با نوای لای لای گریه ها با نوای گریه ها ہم <تصفيق> یسو کا تا کی تاوبم کنی زور بر یک سوزیدی تو غرق مهتاوبم به به به به به به مستورم آقا به قدری شیر قشنگه و آقای گلپایگانی واقعا معرکه می‌کنن آقایون این چیز می‌زنن که آدم مسحور میشه مثلا یادش میاد تصیم بکنه و دست بزنه آقا خیلی خیلی لذت بردیم از نواختن آقایون نوازندگان و آواز آقای گلپایگانی حالا نوبت آقای مجده هست توضیح بیشتر اگر بخوام در آقای مجده بدم بادم بکنم که ایشان مصطفی قمشه ای هستند که تخلص می در شعر مجده حالا توضیح آقای قمشه خودتون در این آقای مجده من اخیراً ارزی نداشتم پس چرتون شروع میفرمایید اجازه فرد بون وقت ما تقریبا تنگ هست سرکار دوقت اشیری بفرمایید تغتی خودتون و یک قطعه از آقای علی محمدی خواهش میکنیم که بیان کنن برد. بس دو بیت غزل رو می گفتید این غزل نیست بله بله چی هست دویوم اینش؟ یک مصنوی مصنوی خیلی خوب آقای مجده ما خیلی بزرگ شدن من وقتا کچیک بیدن اینشان رو یادم بله حالی یه ماجره کشمزهی گفتن آقای دکتر باستان نشان میبینید که اینک دارن من آقای مجده اسمش مکامت دازه بعد از نیم سویست فهمیدن که سرکار دکتر باستان هستی بل. گفتن من مریض خودشون بودم به من دادن. گفتم بز... به طرز تخصص آید دکتر من شک بکنم یا اینا که بهش بوده که شو سابیلدارم نمیجوشه خوش بنده رو سابیلدارم محرمم میذارم بعد خوب بشه ما رو نمیشته اگه خدا نکنه اد بکنن این کار چش پزشکی یعنی مشینی ته بابت وقتی یارو مرد مرده راحت شده اما چش پزشکی اگه خدا نکنه خراب بشه همیشه زنده یاد آدمه مگرم خوب بشه که یادش میره خوب موجب با سر زلف دل را سر و است که بود ذاتش عشق تو در سین شراریست که بود ای به قهر از بر من رفته بیاو از در مر ای به قهر از بر من رفته بیاو از در مر که مرا با تو همان عهد و قراریست که بود <تصفيق> همه شب ای گل نو چون مرغ سهر در هوای تو مرا ناله زاری است که بود به سر زلف تو سوگند که این دل شده را در فراق مه روजत شب تاری است که بود موج در آبی گل روی تو خزان گشت بهار گلشن حسن تو را بهاری که بود بحبا. اینشالله که خواهد اومد آقای مجدی وله اگه سیره بشنوه که حتما میاد آقای دوی که باستان زمنان جزن فالا میبینم خب آیال محمدی بله این شما و اون هم آقای شریف و اون هم آقای مجدی که در کرارتون نشستند و بعد ازشون شعر رو باید کنی بله من خواهش میکنم آقای فرنگ شریف آشاییف شروع فرمید الهی سینه ی بی است آینه ام ده من بخر نوری کرم فرما مرا ذوق حضوری خیلی. خیلی. چه بیزارم از این افسردگی ها چه بیزارم از این افسردگی ها از این دم سردی و دلمردگی ها نه از چشم مستی نگاهی نه از چشم سیه مستی نگاهی به این دل خسته باشد گاه گاهی نبا تاب سر زلفی قراری ندر کوی دلارامی گذاری نقمجینم نقمجینم زجور نوزنینی نشاد از دلبر مهرافری پریشان نیستم ز شفته نه در چوگان غم سرگشته گوی چگویم من چگویم من چگویم به بزم می کشان خالی سبویم در این ویران سرای آشناسوز در این ویران سرای آشناسوز که از شب تیره تر باشد مرا روز کسی را پرسشی از حال ما نیست نمیدان نمیدانم که با ما آشنا کیست همه نایم نوای بی قریبم در دیار آشنایی نمیخواهم ز تو نام و نشان را نمیخواهم ز تو آمشان را طریق آشکارا و نهان را مرا از جام عشقت ساقریده دلی آوشفته پر سودا سریده به سوزانم درون آتشعه به سوزانم درون آتش اشق فروزان شعله های سرکش اشق کنان کنان که من نماند خود نشانه در این دریای ناپیدا که در دریا همه آب است آب است عباس این خودنمایی از حباب است در این دریای بی پایان حبابیم ولی قافل ز اصل خود که آبی خوش که از خود دیده بستند حباب خود را شکست آفر آفر شدار آفر آقای مجری بسیار مصنوی خوبی بود پر پر شور <تصفح> آقای علی محمدی هم خیلی خوب خوند بله آقای علی آقای محمدی هم خیلی خوب خوند تشکر تمام احساس چه خب همونطور که در هین جای برنامه عرض شد ربائی های آقای بهادر یگانه و آقای شهراشو به دست بنده رسید و حالا بنده بدون اینکه نام ببرم از کیث چون نتیجه‌اش رو هفته بعد اعلام خواهم کرد، ها رو به عرض می‌رسونم. ربای یکی از آقایون این است. اون که با کلمات کشتی، طوفان، موج، گرداب سروده شده. چون کشتی طوفان زده در گردابم مانند حباب روی موج آبم گرداب شدم زب به خود پیچیدم موجم که چ موی او به پیچ و تابم یکی از ااق دیگر با همین کلمات این رو بایر ساخته ساقیی به کفار کشتی باده ناب وین قرقه طوفان بلا را در گر موج ز طوفان نرهاند بازم مشکل که کشم رخت برون از گرداب با کلمات گرز کاسه آتش و میخ یکی از آئینوشوارا این رو ساخت با گرز قمش ز هستی انگی... با گرز غمش ز هستی ام در کاسه من بجای می آتش ریخت در دل قم او چومیخ پا بر جا بود سرکوفته شد ولیز کویش نگریخت شعر دیگر ما با این کلمات این روبایی رساخته گیرم که در آتش از پا تا سر ما چون کاسه بشکسته بود پیکر ما استاده میخ بر سر پیمانیم هر چند که صد گرز خورد بر سر ما، <تصفيق> بر حال به داوری چند شاعره بزرگوار که بعدا اسمشون اعلام خواهم کرد در در هفته آینده برنده رو تعیین خواهیم کرد و جایزه ای تقدیم برنده خواهیم را. شاندگان صاحب دل در اینجا با اجازه شما دفتر بعض را میبندیم و همراه میهمان عزیز و شاعران گرانمایه، خنرمندان شورنگیز و گویندگان گرامی به شما پدرود میگوییم چشم دلتان روشن و عرصه خاطرتان گلشن باد